اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله یشهد ان المنافقين لكاذبون به نام خدابنده بخشنده بخشایشگر هنگامی که منافقان نزد تو آیند میگویند ما شهادت میدهیم که یقینا تو رسول خدایی خداوند میداند که تو رسول او هستی ولی خداوند شهادت میدهد که منافقان دروغگو هستند اتخذوا ايمانهم جنتا فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. آنها سوگندهایشان را سپر ساختهاند تا مردم را از راه خدا باز دارند و کارهای بسیار بدی انجام میدهند ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. این بخاطر آن است که نخست ایمان آوردند سپس کافر شدند از این رو بر دل‌های آنان مهر نهاده شده و حقیقت را درک نمی‌کنند وإذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العذو فاحذرهم قاتلهم الله ان جسم و آنان تو را در شگفتی فرو میبرد و اگر سخن بگویند به سخنانشان گوش فرا می دهی اما گویی چوبهای خشکی هستند که به دیوار تکیه داده شده اند هر فریادی از هر جا بلند شود بر ضد خود میپندارند. آنها دشمنان واقعی تو هستند پس از آنان برحذر باش خداوند آنها را بکشد چگونه از حق منحرف میشوند و اذا قیل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم لو ورؤوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون هنگامی که به آنان گفته شود بیایید تا رسول خدا برای شما استغفار کند سرهای خود را از روی استهزا و کبر و قرور تکان میدهند و آنها را میبینی که از سخنان تو اعراض کرده و تکبر می برزند. سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم این الله لا یهدی القوم الفاسقین برای آنها تفاوت نمیکند. خواه استغفار بر ایشان کنی یا نکنی هرگز خداوند آنان را نمیبخشد. زیرا خداوند قوم فاسق را هدایت نمی کند همو الذین لا تنفقوا على من عند رسول الله حتی ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین ولیکن المنافقین لا يفقهون آنها کسانی هستند که میگویند به افرادی که نزد رسول خدا هستند انفاق نکنید تا پراکنده شوند قافل از اینکه که خزاین آسمان ها و زمین ازان آن خداست. بل المنافقان نم فهمند. يقولون لئروا جعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين ولكن المنافقين لا يعلمون. أنعمي <تصفيق> جند. اگر به مدینه بازگردیم عزیزان زلیلان را بیرون میکنند در حالی که عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است ولی منافقان نمی‌دانند یا <تصفيق> أيها الذين آمنوا لا تنسو ولا اولادكم عن ذكر الله و من یفعل ذلك فأولئیک هم الخاسرون ای کسانی که ایمان آورده اید اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا قافل نکند و کسانی که چنین کنند زیانکارانند وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول, فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين از آنکه به شما روزی داده این انفاق کنید پیش از آنکه مرگ یکی از شما فرا رسد و بگوید پروردگارا چرا مرگ مرا مدت کمی به تأخیر نینداختی تا در راه خدا صدقه دهم و از صالحان باشم ولی يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها و الله خابیرون تعملون خداوند هرگز مرگ کسی را هنگامی که عجلش فرارد به تأخیر نمیاندازد و خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است.